اطنا دارین که بشوریم و استاد میگه شما صرفوار هستین بفرمائین اینجا فلان ساعت صرفوی دو است. اگر قبل است تو بی سنفه از است تو این صرف از ماز بود تو به صرف از ماز با مالکیت انسان که است مالکیت انسان مجازی است و مالکیت خداوند متعال جل جلاله جل جل حقیقی میباشد مالکیت انسان ناقص است و مالکیت خداوند متعال جل جلاله جل کامل است چون توحید خداوند متعال در تدبیر آسمان ها تدبیر اسمان ها و طبیعت و تمامی طبیعت خداوند متعال ذات یگانی است که تمام تدبیر تمامی اموری امورات به خداوند متعال جل جلاله تعلق می گره. خداوند است که مثلا آسمان ها را نزدش جور کرده از آفتاب جور کرده از زمین جور کرده از این خاطر میگه که مسلمان دو قسم است یکی مسلمان است که به اسباب وجود فیزیکی خود اگر کافر هم است به خداوند تسلیم است حالا هر کس به خداوند تسلیم است نگه که خداوند گفته بود دو چشم انسان به بیش تا ولی هیچ کسی نیست که ولی من به میگه تسلیم نیستم چشمم باو با فرقی سالم باشه خداوند مثلا بر انسان بد هسته داد. قابل هیچکسی نیست که مثلا در همین قسمت بگه که والا من, من می تسلیم می شم می خوام که ما 4 روز داشته باشم. از این خاطر انسان خواسته باشه یا نه نخواسته باشه در تدبیر طبیعت مثلا خداوند گفته که آفتاب باید برای کل دنیا باشه. هیچ کسی نیست که بگه والا من ای آفتاب هم می آفتاب می خوام که تنها از یونایتد استیت باشه، دیگرها باید آفتاب نباشه باشه. از این خاطر میگه که تدبیر امور آسمان‌ها روز چه وقت باشه، چه وقت باشه، انسان چه وقت زنده شوه، چند سال باقی از این خاطر بسیاری رحبه های بزرگه که مردم او را بسیار قدرداری میکنن لیکن دیگر از وقتی که خداوند میگه که بمر در مون لحظه او میمره و بلاخره باز او رو میبرن و به خاک میسپارن و درش میدن. از این خاطر در تدبیر آسمان ها انسان باید اقلیه داشته باشه که بغیر ذات خداوند متعال جل, جل و جل و هم هیچ کسی دیگه مداخله کرده موضوع بخش دوبه دیگه ماشمک از تولید انوهیت است خسته شدیم؟ بله؟ خب تولید اولویت در قسمت تولید اولویت اله چی را میگن؟ اله بمانای معبود است توحید اولویت یعنی توحید عبادت توحید عبادت برادران عزیز خواهران محترم وقتی که درباره توحید اولویت صحبت میکنیم این یکی از نقاط بسیار مهم عقیده یک مسلمان است اگرچه یک تعداد زیادی از مشرکین قریش در توحید ربوبیت به توحید ربوبیت ایمان داشتن لکن مشرک گفته می شدن و لئین هم من خلق از سموات وقتی که از مشریکین از ابو جهل از ابو لحب پرسیده بشد که من خلق از سموات والعرب زمین آسمانه کی خلق کرده؟ لا لایقون الله الله خلق کرده و تو مشرک تو کافر ریگر پا بله در قرآن عزیمشان میگه که وقتی کسی بهشان پرسان میشد که آسمان ها و زمین کی خلق کرده میگفتن که خداوند از آسمان از عبرها را کی خلق کرده میفتن خداوند از عبرها باران کی نوازل میکنه خداوند ایچه سوال پیدا میشه که خیچو را اونیزکی اینا به خود وجود خداوند ایمان داشتن به ایمان داشتن که زمین و آسمان خداوند خلق کرده قایچورا اینا با وجودی مشكله گفتن ایشان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقابل از اینا خیس و اینا در مقابل پیغمبر خیسن یجمه ای که اصل مشکل قریشیها و بود پرستا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینا بود که خداوند وجود داره یا خداوند وجود نداره عل شریعتی چی می یعنی؟ نه تمام تمامه ها نه پیغمبرها برای نیومده که مردم بگن که خب اونا ما خدا وجود نداره پیغمبرها بگن خدا وجود داره بلکه تمامی از اونا به وجود خداوند متعال جل جلاله ایمان داشتن. ولی پیغمبرها ها بودند به خاطر چی؟ به خاطر توحید الوهیت یعنی که شما عبادت تان را از معبودات زیاد انتقال بدین فقط به الله جل جلاله مشکل از اینا در توحید عنویت بود یعنی اینا معبود خود چی میکردند معبود خود تنها خداوند متعال قرار نمیدادن بلکه در پالوی خداوند مخلوقات دیگر را هم عبادت میکردن مشکل از اینا در توحید در موضوع لا اله الا الله بود مخالفت از اینا با اله الا الله بود که پیغمبر ها تمامشان آمده بودن تا شما عبادت تونه نماز تانه روزه تونه ذکر تانه نظر تانه قربانی تانه تمامی اعمال تان که در قالب عبادت از این مخصوص ذات خداوند متعال جل جلاله بساله اونا با این نختم مخالفت خالفت داشتن از این خاطر قربانی برای بط می برشان که شما اگر قربانی رو برای بود میکنین اینمی شریک ساختان بت است با خداوند شما میخواین که قانون انسان ترجیح بتین به قانون خداوند اینمی در حقیقت شریک ساختن انسان است با خداوند از این خاطر دانشمند میگن که تمامی پیغمبران آمدن به خاطر یک کلمه و اونی که شما که خدا را اشناسین از چیزهای دیگی دور شدین و تمام عبادات تانم مخصوص ذات خداوند مطال جل جل رو ایرا توحید انوریت میگن آیات قرآنی زیاد است ببینن علامه بزرگ اسمه دکتور علی شریعتی در بحث توحید چنون می نگارد؟ پیغمبران ما از ابراهیم تا پیغمبر اسلام و پیش از ابراهیم نیامده اند تا بشر را متدین بکنند برای اینکه بشر به فدرت خودش متدین است نتیجه که گرفته می شود این است که این پیغمبران نیامده اند در, در جامعه های انسانی احساس مذهبی یا دینداری ایجاد کنند زیرا هر پیغمبری در هر جامعه که مبعوث شده در جامعه مذهبی یا دینداری مبعوث شده است آن جامعه مذهبی دینی بوده و مذهبی یا دین داشته است بنابراین نتیجه گرفته می شود که هیچ کدام از, از این پیغمبران بزرگ ما که ما میشناسیم نوامدن تا خداپرستی را در جامعه ها تبلیغ کنند، چون همه جامعه ها بدون هیچ شک پیش از بحثت پیغمبران که ما میشناسیم خداپرست بوده ان. پس آمده چیکار دکتر شریعتی در جواب این سوال که خودش مطرح نموده است نگد آمده فقط یک کار بکنند و نه هیچ کار دیگر و هر کار دیگری هم که کردن برای تحقیق همان کار اولی است و آن اینکه توحید را جانشین شرک کرند شرک یعنی چی؟ شرک برخلاف آنچی که ما تصور میکنیم لا مذهبی و لا دینی نیست دین و مذهب است بر خلاف آنچه که فکر میکنیم مشک دیندار است معتقد است و پرسنده و عابد است مشک است که در چین وقتی که بطه را که روی عربه های بزرگ از معبد بیرون می آورن زنان و مردان زیباترین دختران و پسران خود را نظر می که در پای بطه سر ببرن یعنی می که شما فکر نکنیم که کسی که بطفرسته است و بیدین است و بیدین نیست. دین داره لكن دین پرستی دارم. شما اون دوره وقتی که میبینین او بیدین نیست اگر شما به اون تو بیدین است مگن خیر. من دین دارم لكن مشکلش در این است که به یه وضع عبادت خداوند یکتا تا میرن حیوانات عبادت میکنن میرن انسان ها را عبادت میکنن بناهن به اساس دفته دکتر علی شریعتی تمام پیغمبر ها آمدن تا انسانها را از عقیده تعدد از انسان پرستی از شخص پرستی از بود پرستی به عقیده توحید یک پرستی که ذات الله جل جلوب است به او اینا را سوق بتن فهمید مطلبش انچالا مشکل است اینا هم نقطه مهمی که اینجا ما شما باید دوره بفاهمیم او چیستن؟ او مفهوم کلمه لا اله الا الله این امروز بخوانیم یا بروز آینده؟ روز آینده خلاص فلان سلفیتونس مادر سبب خاطر عزیزی ختم کردم که همیشه صنفیتون در داخل و خارج از پیش ما سوال میگردن و میگن که بر ما لطفا زیاده تر وقت بدین می سوال های خود ما سوالا مطرح بکنیم از این خاطر سوالات جزء درس است لطفاً متوجه باشین مادر خاطر از اینکه شاگردایی که باسن فلاقه دارن و یا ندارن شاگردایی که سوالای دیگر را جواب میتن جوابا گوش میگیرن یا نمیگیرن من کوشش میکردم که یک سوال خود برای اول نمره‌ها و شاگردای لایق از همین سوالی که سلفیتون میکنه از بیارم خارج از چپت از این اگه یک سوال چپتر میه یک سوال باید خواهیج از چپتر باشد تا شابرده که متوجه دیگرا هستن در وقت سوال کردن از اونها متوجه سوال هستن متوجه جواب هستن یک سوال مطمئن از این میارم از داخل سن بفرمایید. مرمی شما لطفا سوالتانو بودن کنیم اصداد با این که ساله های زیاد از آمدن اسلام ترمیشه و همچنان که دین از آغاز که حال با عدیان و انجاهای دیگر در یک نام نبارده برای بخوایشه در درود خود از دیرام اصداد نمیگیم که بین مذاهی بطا در درود خود اصداد اصداد اصداد براساس یک, یک درود خواستی که اصداد اصداد اصداد میشه تنید داشته وساخترا یا و و هم فرض داشته ما دا در, خود مثلا دا دا دا در قسمت دین ما د قسم متدین داریم. یک قسم متدیني نيستان که اونها حقیقتا ګسوي هستند که علاقمان به حق هستند اونا میفهمن که خدای ما است پیغمبر اونم او آخری پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است اگر چی ما به پیغمبر هم ایمان داریم کتاب اصلی ما و قرآن ازلی مشان است هر مسلمان در هر مذهب اسلامی که بودن اونا به وجود خداوند متعال جل, جل, جل و عقیده دارن وقتی که به قرآن از این مشان اخیده دارن برای رفع هر مشکل خود خداوند متعال جل جل برای هر مشکل برای انسان ها قرآن از این مشان روان کرده که اگر انسان دقیقاً به قرآن رو میکنه میکنن از خاطر بین علما، بین دانشمندا بین خداشناسا، بین قرآن شناسا هیچ مشکلی نیست نه؟ وقتی که شش تیم امراء علما و مذاهب مختلف در های بسیار عجیب و غریب ما اشتراک کردیم کسانی که قرآن من عیسی کتاب خداوند قبول دارن و برشان آیت قرآن خواندیم گفتن که آمنا و اسلمنا و تسلمنا وقتی قرآن را وقتی می‌خوانم من با خودت یک مشکل در یک موضوع پیدا می‌کنم خداوند بر رفع این مشکلات عقایدی ما و شما چی کرده قرآن عظیم نازل کرده خدا یکیست قرآن یکیست دوست خداوند در قرآن معلوم است دشمن خداوند در قرآن معلوم است راه مسلمان معلوم است از این خاطر مشکل بین دانشمندهای مختلف کسایی که قرآن همشتن هم هیچ مشکلی وجود نمشتن اگر مسائل فروات است این علماء و دانشمندهای اسلامی مگن یعنی که این رحمت است انسان انسانها ایده خداوند بر عقل انسان واگذار کرده که مثلا متابقه منطقی خود بیمین که این حکم خداوند چقدر قابل تطبیق است مشتهیدین استن علما هستن امامو هستن که در اون قسمت این مسائل فروات فقیره به اساس آزادی که خداوند برای انسان داده مثلا در بعضی قوانین بعضی قوانین است که او رو خداوند واگذار کرده برای انسان ها انسان میتونه که قانون ترافیک خدا مثلا در افغانستان قانون و ترافیک خدا مطابقه بل مردم جور میکنن در پاکستان قانون ترافیکشون با افغانستان فرق میکنن در ایران قانون ترافیکشون فرق میکنن اینه خداوند به و گذار کردن در بعضی مسائل فروعاتی هست که آیا ما دست ما از این طرف یا این طرف اینه ای ای وقتی که علما و مشتهدین یک نظر میتن در صورتی که یک نفر خدا را نشناسه به قرآن ایمان داره و برش یک دلیل یا حدیث ثابت میشه که پیغمبر صلی الله علیه و آله قسم ششتا یا این دست است هدف رسیدن است خداوند ایماره رحمت خود میگیره در هر مذهب و در فکر که باشه چون اخلاص داره خداوند اینا را نجاب میتن یک تیدات مردمای های دیگه هست که بنامه دین متاسب است، خودخواه هست میخواه خود می که ایمانه به دست خود, خود جور بکنه از یک خاطر دانشمند اسلام اسلامی میگن که فرق است بین دو کس. فرق از بین کسی که ادعای ایمان میکنه ما در دا ایمان داخل شدیم من می که خالی ایمان رنگش این قسم بسازم من می خوام شکل ایمان ای قسم بسازم من می که دین این قسم باشه اما فرق از بین از اون و بین کسی که یا کسی دیگه که او ایمان در قلبش داخل شده کسی که ایمان در قلبش داخل شده وقتی که ایمان در قلب یک کسی داخل شده باشه بنا هو ایمان نمی سازه بلکه ایمان او می سازه مثلا یا چه ازلاموست یک است میگه ببینین صحابه پیغمبر با مسلمان امروزی چی فرق داشت با بعض از مسلمان امروزی این که اونا نمیخواین دین متابقه خواسته های خود بسازن صحابه پیغمبر سابقه ای قسم بودن که وقتی که یک عادت داشتن یک فرهنگی وجود داشت یک قانون وجود داشت ولی میدیدن که حکم خداوند اینی شیده است وقتی مجربی که حکم خداوند متعاله میفامیدن به حکم خداوند متعال ت الامام السلجوقي یک کتاب نوشت که به نامش فراموش شده ای چی چه میگه؟ میگه صحابی پیغمبر میشدن که ریش سنت است. روش سنت است. فورا که مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله چهلی مبارک جور بکنن. دیش خدا چی چیگه پس سنت پیغمبر است چون سنت فامید فعلا دیش خدا میمان یک دختر مسلمان میفامید که حجاب فرض است فعلا لباس با حجاب میپوشید و عمل میکرد مسلمان که دین در ایمان در دا داخل نشده اونا چی میکنن؟ و میخوان که ایمان مطابق فکر خود تغییر بتن یعنی ایمان مخروط اگر یک مخروطی داشته باشون که در اساس ایمان باشه ببینیم مثلا یک مخروطی است که یک مخروط از برشن مخروطی است که اینجا ایمان در از قرار داره و فرهنگ عادات تقالیت همه چیز انسان باید تحت شای ایمان باشه اگر ایمان رو تایید میکنه و اگر ایمان او را رد میکنه او را رد میکنن. در بعضی کشورهای بعضی انسانهای دیگه هستن که مخروط ایمان را سرچپه کردن مخروط ایمان را چه قسم جور کردن؟ یک قسمی جور کردن که ایمان را در زیر آوردن و در رس آداد تقالیت فرهنگ و انعنات خود گرفتن ای کسی که سرشافه کرده انال ایمان امور به چشم ایمان نمی بلکه ایمان به چشم فرهنگ خود می بینه. کوشش میکنه که خواسته های خوده بالای ایمان متقبل بسازه از این خاطر کسی که این قسم نظر داره او باید تجدید ایمان بکنه تجدید نظر بکنه که آیا من می که ایمان بسازم و یا ایمان باید مره را بسازه و کسی که میخوای که میگم آنها بسازم بر کاتاژو کلیجی مشکلات داره چون تعصب است خودخواهی است همیشه نظر خود ترجیح میکنه در حالی که قرآن میگه و ماکاره لی مؤمنین ولا مؤمناتن حقیقی بر هیچ مرد مؤمن و بازن مؤمن از قبیل الله و رسول او امرم وقتی که خداوند و پیرنبش یک موزوره فیصله کردند گفتند گیت راست ایبوی که آن یکنال همه خیال تو من آمدم که اختر داشته باشند وقتی که خداوند گفت اینی اینی قسمت ایبادت قبول بکنه اما یک دیدگاه دیگه است که وقتی بچویی که خدا تو میگه میگم اون میگم میگه پیغمبرو تو میگه نه ما تو میگم بنانو وبگه که خدا در مقابل خداوند نظریات خدا پیشکش میکنه از این خاطر اصل مشکل در ای که آیا ما ایمان در قلب ماست که ما رو بسازن و یا ما خود ما بسو رنگ گرفته میخوایم که ایمان رنگ داره بریم از این خاطر میگه که صحابه وقتی که می که ریش حجاب فرض ریش مثلا صفت پیغمبر است فرض نیست و حجاب مثلا فرض است فورا خود آرسته میساختند. ساختن اما مسلمان های امروزی موتو چی میکنن امروز ما که ریش مود است ریش مود است و چهره من لاغری یک است ریش بانو داریم خوب تن مالی میشن یکی از ناید بر که اصاد ریش مانده بیادا صنعت نیست اردوخ بخاطر صنعت نمانده تو خود که مود است فیلمی بچه فیلم ریش راش مان میشن در پا... در پالو یعنی به سبایش که میشه اینمی اینسان را که ببینه چون این که ایمان را بسازن دیگر روز پاک صفا روی خود روی خودن اه؟ روی روی روی خودن پاک صفا مثل یک دخترک هایی کردن اه؟ وقتی برش چطور کردی بی بی دیروز خو رویش سنت بده امروز سنت کردی اه؟ بگه که بگه او برادر آلو سنت ها بسیار زیاد هست خیلی است که میک شده گفتم ببینیم چه قسم میخواه که دینه مطابق خواسته‌های های خود مطابق آرزوی خود دینه به خود بچرخانه به میشه که هر کس رو بیبیر. یک نفر برش میگه که بره برای بر بچه لاکت اطلاع ورد خوب نیست تو نگاه خدا مرد هستی خداوند بره دفته که اطلاع رو بارن که دخترها لطیف هستن زیبا هستن اونای چرا خلن مشابهت با این او استاد میگه چی فرق میکنه یک کلاگ، یک مش قلطلا، یک از این خاطر فرق از بین اون انسانه که میخواد که رو دینه مطابق فکر خود جور بکنه، با این مشکل همیشه پیدا میشه. این مشکل در کل مردم ها هست در هر چیزی و بین انسان هایی که اونا ایمان در جای گرفتن، از این خاطر وقتی که قران فراصل شد که الهی هست، وقتی که مسلمان ها را خداوند و خداوند دست یگانسازه. یک نفر که تأیید خلوان یکی <ای> نسازه، مسلمان های که قرآن موحد نسازه، مسلمان های که پیغمبر یکتا نسازه. اگه میتونه کی ياغون يا باکو يفرهين رو با هم متحد بسازه ابد نمیتونه ساخته پس مسلمانای که متحد هستن به اساس توحید خداوند متحد هستن به اساس متحد هستن به خاطر که یک خدا رو عبادت میکنن متحد هستن به خاطر که یک پیغمبر دارن به خاطر که یک قبله دارن کلش یک یک یک یک است و این شما ده تمام دنیا برین بگردین ده تمام دنیا اینمی عظمت اسلام است که یک قرآن است قرآن کتاب قورسان است هم قرآن در ایران است هم قرآن در پاکستان است هم قرآن در اندونزی است هم قرآن در مالزی است هم قرآن در اروپا است هم قرآن در عربستان سعودی است الحمد لله رب العالمين شروع شد قل هو ناس، ملک ملك الناس اله الناس ده كل دنیا هست پس کل میگیم میگیم کتابه واس از این خاطر اینی قران حضرت ابراهیم ما و شما چرا که عبادت مقدس میمارید به خاطر که خانه خاله خدا خود نیست چرا خانه خوده است؟ خدا نیست خ... خدا بخانه ذرات نداره به خاطر ازی که این کعبه سمبول توحید است سمبول یکتاپرستی است سمبول کسی است که حضرت ابراهیم علی سلام و و تعقید توحید از اینجا بر مردم بیان کرد از خاطر کل ما شما چون ما شما را به یک طرف به یک جهت سوق می تکونید جهت توحید و جهت خدا یک است مسلمان ها با هم فرق ندارن. از این خاطر کل مسلمان ها تمام هستند آیا مسلمان رو میشنوزن که بوده قرآن کلام خدا نیست آیا مسلمان در دنیا وجود داره که بوده کعبه قبلی مسلمانان است؟ آیا مسلمان وجود داره که بوده محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرین پیغمبران است؟ بنابراین در بین از این که ایسه اصل چهار اصل اصاسی دارن بین نظره هیچ مشکل نیست اما مسلمان هایی متعصب خودخواه مسلمان هایی که میخواهیم دین مطابق عادات خود چیز کرن قرآن در عقب نیمانن مخلوطشان سرچپست ما و مسلمان هایی مخلوط هیچ کار نداریم خواهر چی میگن؟ زبا جارو که بزیارتونه شنکی بابا کمی قبول که دا سوالونه میر بر قبرگل باید باید خود خلا مشرک میساد خب تا فالبینی سایس، ملا ها نیستم اونا رو فالبین بلوید دیگه ملا ماستیم <تصفيق> شما همیشه نام ها رو تغییر میکنیم بسیاری وقت مردم برای نرس ها داکتر سرم میگن و داکتر به بیادر میگن <تصفيق> از این خاطر کنشوش کنن که هر کس نامشه نام شد خودش بتیم در قسمت از که ما آیا به بخ... خداون مطال جل جلو قسم بخوریم چون هر انسان به ذات عظیم و بزرگی که بناز شست به اون قسم میخوره اول خداوند میگه شما والله تجلل الله اوردان لایمانکم شما همیشه کوشش کنین که ذات خداوند بسیار در هر گپتون با قسمهاتون موقین اون یاد نکنین که گناوار میشین ولی اگر یک نفر مجبور میشد آ محکمه در جای مهمی که هیچ خلاصی نداره اگر مسلمان حقیقی است و عظمت خداوند است ای باید قسم خدا به نام خداوند بگه که والله بالله تالله یعنی است که خداوند گفته میشه. در قسمت از که مثلا یک تیجات مردم پیش فالبین ها میرن و اون فالبین ها اونا مثلا بعض وسیعت ها و نسیعت ها میکنند مثلا دلب سرک شیشته و یک چند دانا یک از دانا یک های کمسایی را میپرداد اصلا کتاب خود و بازبار روزن نگیم اینو ادعای قید میکنن. در حدیث شریف است اگر کس پیش فالبین ها در سر پل پامیر یا در سر پول خشتی میره پیش فالبین ها میشینه و یا در پیش یک فالبین که او از غیب گپ میزنه پیش ازو میره اگر عقیده نکنه خداوند چه روز عبادت قبول نمیکنه اگر عقیده نکنه و اگر عقیده کنه خداوند عبادت عمری قبول نمیکنه از این خاطر کلورا ادعای غیب میکنن هستند، پیش فایل بینا و پیش از اونا رفتن برای یک مسلمان درست نیست در اقید اسلامی درست